اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده على ما كان ونستعينه من امرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا و ونسلم على نسلم علی سیدنا و نبینا، ابو القاسم المصطفى محمد. وعلى آله لا طیبین و لا الله في الأراضين.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 و ملازمت امری و مجانبت نحیه همه شما نمازگزاران گرامی و خودم را به تقوا و پارسایی دوری از آلودگی های روحی و گناهان و عمل به فرمانهای خداوند در همه شعون زندگی سفارش و دعوت میکنم از خداوند متعال می که همه ما را به سوگواری خالصانه و کسب تقوا در همه زندگی موفق و معید بدارد به مناسبت آغاز ماه محرم و دهه آشورای سالار, حسین، سالار کربلا عبا عبدالله الحسین سلام الله علیه سلسله مباحث مربوط به خانواده را قطع میکنیم و امروز به بیان نکاتی در باب ازاداری تراز انقلاب اسلامی و یک عضاداری جامع و واقعی میپردازیم قصه آشورا قصه بزرگ و بینزیری در تاریخ بشریت است در آشورا عبا عبدالله حسین در برابر یک فرهنگ منحت جاهلی که تمام اسلام را به تحریف کشانده بود قیام کردند. آشورا یک برخورد آدی حق و باطل نیست در آشورا تمام حق در برابر تمامی باطل قرار گرفت در آشورا امام حسین سلام الله علیه می‌دیدند که یک فرهنگ جدید ظالمانه، ستمگرانه، اشرافیگری، پادشاهی و تحریفگر همه حقایق اسلام بر همه مقدرات جامعه اسلامی حاکم شده است و امام در برابر چنین فرهنگ منحت تحریفگر با تمام وجود قیام کردند اگر قصه تغییر تمام اسلام و تحریف همه حقایق دین نبود شاید اینجور آشورا نمیدرخشید. درخشید آشورا قیامی در برابر یک تغییر بزرگ و تحریف بزرگ در اسلام بود و امام در یک نقطه عطف تاریخی در یک پیچ تاریخی قد برفت راشتند حق آشورا فقط بر جرایان مکتب اهل بیت نیست آشورا بر همه هویت دینی و بر همه طبقات و تواعف اسلام حق دارد اگر آشوران نبود در اون پیچ تاریخی تمام اسلام به تحریف کشنده میشد. و از اسلام و حقایق متعالی آن چیزی باقی نمیماند. این بود راز اون فداکاری بزرگ اون حماسه عظیم آن جان فشانی تاریخی ما در برابر چینین حماسه بزرگ و در برابر معمار این حادثه و قیام و انقلاب عظیم وظائف مهم و بزرگی داریم وظیفه ما اولاً معرفت امام و آشورای بوست شناخت درست آشورا، تحلیل درست آشورا یک اصل مهمه ما هم در نویسندگان غیر شیعه هم در میان گاهی شیعیان تحلیل های نادرست و غیر جامع از قیام آشورا ارائه شده اولین وظیفه ما معرفت درست به سالار شهیدان و تحلیل درست از قیام آشوراست وظیفه دیگر ما عرض ادب و ارادت به پیشگاه سالار شهیدان و شهدای کربلاست و این ارز ادب و ارادت اولا در قالب زیارت تجلی میکنه اونچه که از روایات در باب اهمیت و عظمت زیارت سالار شهیدان آمده است در حد اخبار متواتر و با تعابیر بسیار شگفت انگیز آمده زیارت امام حسین فریقه علی کل مسلم و اون تعابیر بلند و ارزشهای متعالی که برای زیارت سالار شهیدان آمده تذکر مسائب آشورا ازاداری و گریه اینها جلوه از ارز ادب و ارادت به پیشگاه آشورا و معمار بزرگ اون سالار شهیدان صلوات الله و سلامه علیه هست ما در برابر این حادثه بزرگ وظائف تاریخی و مستمر داریم این قصه در روایات ما مهندسی شده با نقشه دقیق طراحی شده تا آشورا بماند تا این مشعل فروزان فراموش نشود تا در همه اعثار و امسار کربلا و آشورا الهام بخش باشد و به فضل الهی این توصیه پیشوایان دینی مورد توجه قرار گرفت ما سال به سال شاهد درخشش این نور هستیم سال به سال شاهد تلعلو انوار آشورا در ایران و جهان هستیم خب وظیفه ما عرض ارادت و ادب در پیشگاه این قصه بزرگ و معماران بزرگ آن هست حالا ما عزاداری تشکیل هیئت و اقامه ازا از وظائف روشن ماست عزاداری ناب ازاداری درست تشکیل های ازاداری در تراز انقلاب اسلامی و ارزشهای ناب اسلام اصول و شرایطی دارد من در محضر شریف شما و در نخستین روز از ایام سوگواری سالار شهیدان فهرستوار اصول و شاخصهای یک ازاداری ناب و درست و جامع را ارز میکنم امیدوارم در همه کشور به ویژه در قم این پایگاه علم و جهاد و اجتهاد همه حیعتها و عزاداران به تطبیق این شاخص ها و معیار در ازاداری ها و حیعت ها انایت بفرماین یک مقوله ازاداری با تمام همت باید رشد و ارتقا پیدا بکنه هر نوع شبه افکنی در احیاء ازاداری و شکوه ازاداری شبه افکنی ناروا و غلط است. ازاداری یک اصل مهم و شاخص مهم در محبت اهل بیت و خاندان پیامبر و اسلام ناب و درست است دو ازاداری درست ازاداری است که از اخلاص و صداقت و نیت پاک برخوردار باشد ازاداری باید از آسیبهایی مانند ریا و چشم و همچشمیهای بیجا منزه و پاک باشه ازاداری برای خدا با نیت پاک و سر اخلاص و صداقت دو سوم بیان مصیبت ها و ازا باید راست و درست و مستند به منابع صحیح و اصیل باشد راهیابی دروغها، ها خرافات و قصه های غیر اسیل و غیر ثبت شده در تاریخ نباید به منبر و به وعظ و سخنرانی و مدداهی و نوه سراهی راه یابد گاهی ما شاهدیم برای گرم کردن قصه ازاداری افرادی به خیال پردازی های ناروا و قصه های غیر اسیل روی می آبرن. این یک فرهنگ غلط است چهارم از حسین باید انقلابی و متکی به ارزشهای انقلابی و ارزشهای شهادت و ایثار باشه انقلاب اسلامی در پرتو آشورا شکل گرفت دفاع مقدس ما شهیدان سرفراز ما به عشق آشورا و کربلا به میدان آمدند ازاداری که از اصول انقلاب اسلامی و عرضش های انقلاب فاصله بگیرد ازاداری تام و کامل نیست انقلاب اسلامی ریشه در آشورا دارد احیای آشورا باید به مسائل امروز اجتماعی و سیاسی ایران و جهان گره بخورد آشورا باید الهام بخش های مقابله با ظلم در عصر جدید باشد یاد شهیدان و امام شهیدان و ارزشهای متعالی انقلاب و دفاع مقدس در عزای ما باید به صورت هوشمندانه و درست و دقیق تلعلو بکند و تجلی بکند پنج ازاداری را نباید از سایر مسائل دینی و فرهنگی و معارف دین جدا بکنیم هیئتی موفق است که در درون آن احکام دین عقاید اسلام معارف الهی پاسخ به شبه هایی که اعتقاد و اخلاق جوانان ما را هدف گرفته است باید در عزاداری ها جا پیدا بکنه عزاداری که در متن آن توجه به ارتقای معرفت دینی به ویژه نسل جوان جای درست و صحیح داشته باشد ششم پرهیز ازاداری ها از اموری که موجب وهن مذهبه این که رهبر ما انقلاب بر پرهیز از قمزنی زنی تاکید می به خاطر اینی که یک اقدامی که پایگاه اصیلی هم ندارد حد اکثرم اگر کسی نظری داشته در یک شرایط خاصی بوده امروز موجب وهن مذهب و خدشه به اندیشه و معارف اهل بیت و اسلام عزیزه هر چیزی که موجب وهن مذهب و عرضش های اسلامی می شود و پایگاهی در معارف اسیل و فتح ما ندارد باید از حیعتهای ما دور داشته بشه حیعتها باید حیعتهای بانشات و شاداب دور از موهومات و خرافات و با جهتگیری به ارزش‌های الهی و انقلابی فعالیت بکنند هفت توجه به وحدت اسلامی و ترغیب همه فرق اسلامی به حضور در مراسم سالار شهیدان امروز ما در جای جای اعلام شاهد این هستیم که های گوناگون به ابو عبدالله لوسین ارز ادب می کنند ما نباید راه را بر این ارز ادب ها ببندیم. باید در نقاط مختلف به ویژه جایی که برادران اهل سنت ما حضور دارند شرایط ادامه این حضور را فراهم کرد. آشورا پیامهای خاص شیعی دارد اما در دل آشورا پیامهای فرا مذهبی و برای همه امت اسلام هم وجود دارد آشورا و سالار شهیدان ریشه در روایات فراوانی دارد که اهل سنت نقل کرده‌اند ما باید اجازه بدیم همه مذاهب اسلامی به پیشگاه آشورا عرض ادب و ارادت بکنند هشتم پرهیز از تجملات و ریخت و پاش و تشریفات ناسهی گاهی حزینه می شود بعضی میگن نباید حزینه کرد در ازاداری ما میگیم باید حزینه کرد ازاداری سنت سنت اکید اسلامه اما این حزینه باید با حساب و کتاب و معتوف به اهداف مشخص باشه نه تحکیر بر گسترش شعر آشورایی و هنر است. آشورا یک هنر متعالی و خاصگاه و دارای سوجه های بی نهایت از عرضش های الهی است. هنر مشروع شعر درست و هنرهای درست باید در خدمت آشورا قرار بگیره تا کنون اینطور بوده این امر باید استمرار و ارتقاب اعتلاق ایدا بکند آشورایی که بیش از 100 درس اخلاقی اعتقادی و معنوی را در بردارد میتواند جایگاه تجلی شعر و هنر باشه ده اثالت مسجد و منبر و حضور روحانی در حیعتها ما برای همه مددهان و همه حیعتهای اسیل و پاک و مخلص نهایت احترام قائلیم اما باید ازاداری ما با مسجد و با منبر و با حضور روحانی گره بخورد جدایی از این اصول اساسی در ازاها درست نیست یازده احتمام حیعتها و ازاداران به مسائل اجتماعی در محله و شهر و جامعه خودشان ازاداری یک ظرفیت عظیمی است که با آن می شود مشکلات اجتماعی را حل کرد، آسیب های اجتماعی را کاهش داد. این یک مشعل نورانی است که در پرتو آن می شود خانواده ها را اصلاح کرد، آسیبها را زدود، اشکالات و آسیب های اجتماعی را کاهش داد. انواع آسیب های اجتماعی در پیرامون ما قرار داره از آداران و هیئات و مداها و اهل منبر باید وحشی از هدف خود را معطوف به ارتقاء جامعه و آسیب زدایی بکنند دوازدهم اهتمام به رسیدگی به فقرا و نیازمندان و هدفمند شدن اطعام ها و هایی که انجام میشه خب اطعام چیز خوبی است انجام میشه ولی باید سعی کردیم اطعام هدفمند باشه دقیق باشه اون فقراء و نیازمندان و خانواده هایی که گاهی هفته و ماه بر آنها میگذرد و از حد اقل معیشت محرومن باید جهتگیری بشه محلات محروم خانواده های نیازمند و بیماران یتیمان اینها باید در حزینه های آشورا حس بکنن که رحمت و کرامت حسینی و آشورایی شامل حالشون شده است. سیزدهم تاسیس مؤسسات خیریه خیلی از ادعاها مؤسسات خوبی تاسیس کردن ترژولحسانات، تامین جهیزیه و امثال اینها، این و در طول سال ادامه داره این بسیار کار خوبی است. این رحمت حسینی و کرامت آشورایی در تأسیس کارهای خیر در طول سال از شاخصهای یک هیئت در تراز بالا و اسلامی و انقلابی است پونزده احتمام به نماز نماز جماعت نماز اول وقت اینا اصول اساسی قیام سالار شهیدانه به فضل الهی در این سالها های ما این مسئله را توجه کردند. این توجه باید روزافزون بشود و جماعت و نماز اول وقت مورد اهتمام باشه و همینطور چونده هم توجه به امره معروف و نحی از منکر روح آشورا امره معروف و نحی از منکر است این اصل باید زنده بشود و هفته هم وحدت و همبستگی میان حیعتها پرهیز از رقابت های نابجا و هیجده هم رعایت اعتدال در ازاداری در طول سال این دهه وقت ازاداری است وفیات وقت ازاداری است ولی ما به بگونه عمل کنیم که همه سال بشود دهه های ازاداری این افراد موجب خدشه به اصالت ازاداری می شود و نوزده هم رعایت مسائل بهداشتی و سلامت مردم و ازاداران بیستم هم رعایت حقوق مردم در صداها، در بلندگوها، در رفت و آمدها، در آمدن به ها طبق برنامه ها باید این شعای آزادی در همه شهر و روستاب بپیچد و منتشر بشه اما در همراه با اون حقوق بیماران و مردم در همه جهات ضرورت داره بیست و یکم همکاری 본 نهادهای تبلیغی و امنیتی و, بیست و دوم توجه به مهمانان جوانان به ارزشهای الهی به این حصول اخلاق اسلامی در تعامل با یکدیگر در هیئت نسبت به هیئت امنا رؤسا جوانان زنان این اخلاق اسلامی باید در هیئت تجلی بکنه و به ویژه در شهری مثل قم که ایام ازاداری میزبان هزاران هزار عاشق اهل بیت هست باید مقدم زوار و مهمانان را گرامی داشت امیدواریم های ما در این تراز بالا و بالا قرار بگیرند و آشورای حسینی سال به سال در همه ایران و جهان نورفشان تر شود و همه ما از یاران سالار شهیدان قرار بگیریم السلام علیک یا عبا عبدالله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك اللهم انصر الإسلام وأهله واخذل الكفر وأهله اللهم اغفل للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوفر فصل لربك وانحر إن شانك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین وصلی الله علی سيدنا ابو القاسم المصطفى محمد و علی علی امیر المؤمنین و علی صدیقته الطاهره فاطمه الزهراء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 صافت العباد واركان البلاد وابواب الايمان الرحمن اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله امام حسین سلام الله علیه در روز آشورا این گونه مردم را به تقوی فراخندند عباد الله الله و کنو من الدنیا علا حذر در اون صحنه شورنگیز و هماسی بزرگ آشورا امام فرمودن بندگان خدا تقوی پیشه کنید در از دنیا در ترس باشید بترسید که دنیا شما را فریب ندهد فیند دنیا لو الا اهدن لکانت لكانت و احب بالبقا. این دنیا مندگار نیست اگر قرار بر ماندگاری بود انبیای الهی شایسته تر بودن که در این دنیا بمانند این دنیا،, این دنیا خلق نشده است برای بقا این دنیا آفریده شده است برای فنا و آزمایش در این عالم فجدیدها بال و سرورها مکفهر و المنزل و طلعه و دار و قلعه این جهان جهان ناپایدار است نعمت‌های آن رو به فناست تازه‌های آن کهنه است و جایگاه عبور و گذری است این عالم این امام حسین روز آشورا میفرمان. خطاب امام حسین به هم حاضران در کربلا و به همه بشریت این است فتزودوا فاند خیر الزا از و الله لعلكم تفلحون خدایا به ما توفیق شنیدن این پیام الهام بخش آشورا و کسب تقوا در همه شعون زندگی کرامت بفرما یاد شهدای اسلام انقلاب و به ویج شهدای دفاع مقدس را در این ایام شریف گرامی می داریم یاد شهیدان بین الملل و مقاومت اسلامی شهدای عزیز مدافع حرم را گرامی می داریم و یاد همه بزرگان و مراجع در گذشته و زب حقوق و امام شهیدان را گرامی می داریم و همینطور طور تسلیت و تعذیت عرض می کنم ارتحال عالم فرزانه و بزرگوار آیت الله راستی کاشانی که از چهره های بزرگ و خدوم حوزه ها بود از شاگردان نزدیک امام دن نجف و پس از آن خدمات زیادی به حوزه در قم ارائده و سالهای اخیرم در بستر بیماری قرار داشتند این عالم بزرگ خدمات فرابانی داشت و به لقاء خدا شتافت یاد او را گرامی می و تسلیت و تعذیت عرض می کنم به حضرت ولی از ارواح مراجع ازام رهبر معظم حوزه های علمی مراکز علمی و دینی و ملت شریف و خانواده مخترم ایشان و انشاءالله مردم هم قدشناسی خواهند کرد هم در تشییع جنازه هم در مراسمی که از سوی دفتر مقام معظم رهبری برگزار خواهد شد و یاد همینطور در گزشتگان حادثه این اخیر در قوم که هفت نفر از عزیزان اراقی مون در یک حادثه ای به لقاء خدا رفتند و برای علوه درجات همه نامبردگان تقدیم میکنیم صلواتی بر محمد و آل محمد اما چند مهوری که فهرستوار باید یادآوری بشود یکی هفته دفاع مقدسه همزمان با دهه آشورا هفته دفاع مقدس قرار دارد که امتداد آشورا در عصر ما بود دفاع مقدس مقاومت در برابر تجزیه کشور بود برای اولین بار کشور ما وارد یک جنگ شد و مانع از تجزیه کشور شد دفاع مقدس مقاومت در برابر توتعه هایی بود که برای محصور کردن انقلاب و سقوط نظام و انقلاب اسلامی طراحی شده بود. دفاع مقدس بر این توطئه غلبه کرد. دفاع مقدس یک الگوی جدیدی از دفاع و مقاومت را تولید کرد که همان الگو امروز در عراق و سوریه و نقاط دیگر جهان اسلام و لبنان انتشار یافت و با همین الگو مستکبران ضربه های سهمگین خوردن دفاع مقدس، الهام بخش و الگو آفرین یک مدل جدید از دفاع و مقاومت بود و همینطور احیاگر الگوی مجاهدت ها در صدر اسلام و پرورش دهنده نیروهای بزرگ فداکار و مجاهد و ایثارگر بود شهدای دفاع مقدس ایثارگران و جانبازان عزیز پیشگامان این راه بزرگ بودند این هفته بزرگ را گرامی می‌داریم و به ارواح همه شهیدان دفاع مقدس تقدیم می‌کنیم صلواتی بر محمد و آل محمد موضوع دوم آغاز سال تحصیدی است البته حوزه های علمیه اوائل شهری سال تحصیلی خود را آغاز کردن و فردا دانشگاه ها و آموزش و پرورش سال جدید تحصیلی خود را شروع می کنند و همه استادان و دانشجویان و دانش آموزان و خادمان علم و فرهنگ تبریک می گوییم و برای آنها آرزوی توفیق داریم انتظاری که می در آموزش و پرورش احتمام به سند تحول آموزش و پرورش ارتقاء آموزش مهارتی و فنی و کار و دانش و همینطور رشد علمی دانشگاه ها و پیدا نکردن اون مسیر علمی که طراحی شده و توجه به مسائل فرهنگی و اخلاقی البته آموز و پرورش هم به لحاظ منابع انسانی فضاها مشکلات زیادی داره که هم مردم باید توجه بکنن هم نظام باید توجه بکنه در همین قوم ما کمبود فضای آموزشی زیاد داریم مردم هممت کردن باید از خیرین تشکر کرد اما کافی نیست و نیاز به توجه بیشتری داره در مقوله سواد آموزی هم متاسفانه با این که ما قدم های خوبی به جلو برداشتیم اما هنوز مشکلات زیادی وجود داره در استان خم هشتاد و هشت درصد باسوادیست هنوز سی و سه هزار بیسواد زیر پنجه سال وجود داره که این یک امر بسیار است. باید معالجه بشه و اگر کل سنین رو بگیریم بیش از سد هزار هنوز بیسواد وجود داره و این شایسته استانی مثل قوم نیست، امیدواریم هم در فضا توسعه فضاهای آموزشی، هم در ارتقاء سواد و معالجه بیسوادی و هم مسائل اخلاقی و معنوی توجه روزافزونی بشه و از خدمات انجام شده هم تشکر میکنیم، موضوع سوم اعلام همبستگی با مسلمانان میانمار است، اقلیتی که وجه المصالحه جنگ های اقتصادی قدرتها شدند شدن به امروز مشاهده بیرحمی بسیار شگفت انگیز و قصاوت قطر غارت آباره کردن مسلمانان هستیم و البته ما این را یک جنگ دینی و مذهبی نمی شماریم اما افرادگرایی های دینی و بیشتر حضور خود ارتش و دولت در این صحنه و سکوت مجامع بین المللی همینجا ما این دساوت و بیرحمی را محکوم کنیم و به انوان قام و مراکز علمی و دینی و خوزه اون را محکوم کنیم و امیدواریم که پیگیری های حقوقی جدی انجام بگیره نهادهای بین المللی توجه درستی انجام بدن و این اندازه کافی نیست و ما امروز با همه وجودمان این ظلم و جنایت را محکوم میکنیم و از خداوند می‌خواهیم که به فریاد این ستم دیدگان برسد ان شاء الله اما بسیار مهم و اخیر سخنان سخیف و بیپایه از سوی رئیس جمهور امریکا در سازمان ملل بود سخنانی که یادآور عربد کشیها و های پیشینیان او بود و ما در اینجا چند نکته را باید یادآوری بکنیم یک این که امریکایی امروز اینقدر این سر و صدا را انداخته که در پرونده هفتا ساله گذشته خود صد جنگ و اشغال سبش کرده امریکایی که در نقاط مختلف عالم بدون هیچ وجه قانونی مداخله مظامی کرده اشغال کرده صد جنگ برافروخته، روخته خوشوانه رژیم های ظالمانه و ستمگر بوده و تولید سلاحای کشتار جمعی کرده بمب اتم را به کار برده سلاحای شیمیایی به کار برده یه رژیمی که تو هفتار سال این همه جنایت کرده امروز رئیس جمهور هن با کمال وقاحت مدعی دنیاست تازه همین رئیس جمهوری که خودش کل این پرونده سیاه و تاریک رو رو کرد در زمان انتخابات این, این وضعشه رئیس جمهوری که و رژیمی که از اسرائیل حمایت میکنه از قتل آمها شکنجه ها کار سلاح های کشتار جمعی جنگ های متعدد پشتیبانی کرده و البته اینا چهره های متفاوتی دارن یکی میشه اوباما یکی میشه ترامپ یکی میشه ریگان یکی میشه بوش پدر یکی میشه بوش پسر یه تفاوت هایی در ادبیاتشون هست اما روحشون این هیئت حاکمه روح ظلم و ستم و استقباره این وضع این هاست البته این آقای آدم رزلیس ادبیاتی از قبیل ادبیات ارازل و اوباش بکار میبره فکر میکنه کسی هم خریدار این هست امروز ما در قوم همین جایی که 50 سال قبل بیش از 50 سال قبل امام فرمود ملت ما از امریکا و هیئت حاکمه امریکا متنفر است امروز هم ملت ما در این پایگاه علم و جهاد و همه ملت ما در سراسر کشور و ملل مظلوم عالم این سخنان سخیف و بیپایه را محکوم می کنند و با همه وجود مانند گذشته فریاد برمی آوریم مرگ بر آمریکا. اشتباه نکنید ملت ایران با همه هاشون تحت قیادت رهبری معظم در برابر این سخنان سخیف این مواضع جاهلانه این هیئت حاکمه ظالمه در دنیا خواهند ایستاد آرزوهای شما به گور خواهد رفت هیچ وقت این خوابهای پریشان تعبیر نخواهد شد امروز جبهه مقاومت همان دور که دینی شما را در سوریه و عراق و لبنان به خاک مالیده است. در آینده هم این جبهه مقاومت، این جوانان رشید، این ملت غیور، این مجاهدان در راه خدا مقابل ستمگری و خواهی شما خواهند ایستاد و شما را به فضل خدا ناامید خواهند کرد. این ملت بزرگ این جوانان رشید این جبهه مقاومت در سراسر عالم اسلام فرزندان انقلاب اسلامی درس آموزان مکتب آشورا و فرزندان دفاع مقدسند مگر با این سخنان بی اصل و بی پایه کتا خواهند آمد شما فکر میکنید ما قراره که در صنایع موشکی، صنایع دفاعیمون به عقب بگذاریم، دولت ما، ملت ما باید اقتصاد مقاومت، فرهنگ مقاومت، دیپلماسی مقاومت را پیشه کنن و به فضل خدا ما در همه عرصه‌ها پیش خواهیم رفت و شما هم ناامید خواهید شد ان شاء الله. نسألک اللهم و ندعوک باسمك عظیم الاعظم الاعز الاجل اكرم يا الله اللهم مرزقنا توفیق الطاعه وبعد دعد اللهم منصر الاسلام واهله اهله الكفر واحله اللهم مغفل المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم و خدا یا ارواه امام شهدا مراجع در گزشته زوه الحقوق در گزشتگان از این جمع شهداء عالی مقام دفاع مقدس و مقاومت اسلامی و مرحوم آیت الله راستی کاشانی را با اولیا خودت محشور بفرما ما را قدان نعمتهای خودت قرار بده ما را از سوگواران و از راستین و واقعی سالار شهیدان مقرر بفرما سلام و درود ما را به محضر آقای من حضرت ولیه از ارواح و ابلاغ بفرما خدمتگزاران به اسلام مراجع ازام مقام معظم رهبری را معید و منصور بدار مریزان مریزان مورد نظر جانبازان عزیز را شفا انایت بفرما بسم الله الرحمن الرحیم بله و الله احد الله الصمد و لم یلد ولم یولد ولم لم یکله کفوان احد و السلام